چراغ چشم ما چراغ افروز چشم ما نسیم زلف خوبان است. ما با این جمع را یارب کم از باز قریب سم اولا که قدیم که چشم خودش یک نوری داره هنوزم میگن آمنه ناس میگن چشمم کمسو شده چشم هم کم نور شده به حال این که چشم نوری نداره چشم یه دستگاهی سپسید، این اکاسی و تصویر چیزا اتفاقاً اینم از اجاهبه تصویر اشیا به صورت واجگون منعکس میشه اونجا ولی آدم عادت داره که اونها رو به صورت مستقیم دهید درحال، چراغ افروز چشم ما یعنی مایه نور چشم ما نسیم ظلف خوبان نسیم ظلف خوبان باعث میشه که چشم ما روشن به ماه جمع را جمع ظلف رو می گرم جمع را یارب قم از باد پریشان. یعنی امیدوارم که این جمع از باد پریشانی همی نداشته بشه ایش عیش شبگیری که در خواب سهر بزرد شد ندانی قطعه وقت وی دلی مگر وقتی به در ما عادت عدات تحصر و توجه و این آخرش تحسر یعنی اظهار حسرت توجعم یعنی اظهار درد از وجه یعنی درد بری قاعش شبگیری شبگیر صبح زوده میگن وقت هنوز هوا تاریکه صبح شده ولی هوا تاریک به همین دلیل هم وقت داری را شبگیری که در خواب سهر بزر شده ما نرسیدیم به اون عیش شبگیری خوابیدیم. در خواب سهر اون وقتی که میشد عیش شبگیری بکنیم یه جای دیگه هم باز حافظ داره عشرت شبگیر کن یعنی وقت سیفیده سوق خوش بکسد بیتش یادم نیست کنست دری رایز شب پیری که در خواب سهر بگذشت ندانی قدر وقت ایده مگر وقتی که در ما آدم درسته حقیقتاً اینطور آدم قدر ساعت ها و ساعت ها و ساعت ها وقتی که به تالات زرونه نمیدونه مگر وقتی که فرصتش تنگ بشه و در بمونه بعد که اگر چهار روز وقت داشته باشم حالا در حالی که ساعتها از این چهار روزا کشته و تلفته ندانی قدر وقتی به مگر وقتی که درمان ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست کاروانی وایای نسبت یعنی اهل کاروان توجه رو فرمید که حالا هنوز الان با تیاره هم که میرن ایران مثلا فکر که خیلی سخونه شما شده و خیلی سخته و خیلی زحمت دوشده دیگه وای به اون روزگاری که با قاطر و شطر و عرض کنند حرفا و راه پر از گز و منزل پر از گزنده و بعد باید این بارشون رو هر صبح ببندنه هر شب باز کنن به بگن بخوابنه گرفتاری زیاد گفتن قدیم که از سفر و قطعتون منستقر سفر, سفر تیکه ایست از جهنم اینه که در چنین وضعی که همه در وضع سخت و دشوار هستن دیگه ایراد گرفتن از دیگری و نمیدونم باهانه گرفتن و مشکلاتو مشکلات زیادر میکنه این است که بهتر آدم اینطور نباشه یعنی خوش سفر باشه در حیقت یا میدونید که گفتن که اخلاق آدم دو جا خوب معلوم میشه یه جاش سفره که وقتی مسافرت بکنیم با یه کسی معلوم میشه چقدر اون آدم حاضر خدمت، چقدر کار میکن چقدر مراقب دوستانشه چقدر مواظب حرف زدنهاشه چقدر تحمل سختی داره اینا اینه که میگه که ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست بکشت گشباه یه منزل به یاد عهد آسان. اون وقت که از این در مصفا و خوش آب و هوا و اینا خیلی سفر برات لذت بخش بود به هر حال این سفر دشوار رو که انتخاب میکردن برای این مدید رو یه آسانی برسن یا قصد داشتن و نه که راه نمی افتادن میگه به یاد اون عهد آسانی دوشباهی منزل رو هم قبول کن و تحمل کن. منزل یعنی محل پرود آمدن و گفتم چند بار شارکتی معمولا شش پرسنگی از هر منزلی به منزلی که و اینو پیاده یا سواره البته نه به تا وقتی به حال عادی میرفتن یک روز رو صبح فرسان تیم می‌کردن و سرباز پیاده رو هم وقتی می‌وردن راهنمایی با اون تشکیلات و قمقمه و اینا بساطش 26 کیلومتر یا راه راهنگه اینو این البته مال جایز که راه سهل باشد یعنی راه نسبتاً هموار باشه وقتی راه دوشبار باشه ممکنه از این کتا کردش به هر حال منزل محل فرود آمدن کاروانیانه و اون بلاهایی که دارن در این منزلها که دوز بهشون بزنه و سایر مسائلی که گفت بکش دوشباری منزل به یاد میرسن آب نیست بود برای خوردن نیست نمیدونم روغن برای چراغ افروختن و روشن کردن بنزه چراغ روغن چراغی نیست و آنوقت اینا باید بسای سنگیدیم و این شرح رای پس بگیشم که ندارم پس بگیشم کیار چنبر زلفش خریبت میدر آفز نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنب چنبر یکی از چی جایی بوده که حالا رسن و چنبر هست و مال دامه به هر حال یکی از وسائلی که چمبر این چنبر، این برای ساختن دام و اینا به کار میرفته میگه چنبر زلف معشوب خیالش تو رو فرید دیده موازف باش که او دست نمیده کسی این نگر تا حلقه اقوال نامون که نجنبانیم مال کس دیگری هم هستون حافظ رو بود کنی. بالي ازمين مصرایی است همین نگار تو حرز اقبال ممکن نجوانانی ازمین مصرایی صفحته‌ای از معروفی از انوری که مطلعش اینا اولین مساج نگر تا حلقه اقبال نممکن، نجنبانی، سلیما، ابلها لا، بلک محروم و مستین ها بعضا نوشته بقیه قطعه الله در حواشی آخری کتاب ذکر خواهد شد آخری کتاب حواشی نداره برای اینکه یه میرده به گفته کتاب اون 400 صفحه شده قرار دادم صفحه بیشتر نبوده اینه که اینش از صفحه سرصفی صفحه صفح صفح به چی میکنی که هواشی نده. من اولی که سال ۱۲۲ اینا خریده بودم این اولین چاپ ۱۲۲ مونته شد شد خیره از این بعد برخوردم به این جاها رفتم تایی کتاب نمید خدای این ناسم هم ناقص نیستم بردم پیشی کتاب روش کنه نواله همه شرم کنید جا همه همین جد بعد ها فهمیدم که ولی و بعد یه آقای رو دیدم یک کتاب چاپ کرده در تهران کتاب روششم الان یادم نیست حافظ همین حافظ مرمون غزمینی و غنی رو اینان چاپ سرگی چاپ حروبی کرده چند تا تهرست بهش اضافه کرده تهرست های بسیار مخیف و هرچه معروم قزوینی اون حواشی که نوشته بود در جاهای مختلف تو مجله یادگار رو این طرف و اون طرف منتشر کرد اینا دور که نریخت همه اون چیزایی هم که معروم قزوینی درباره حافظ نوشته بود که در حقیقت همین حواشیه گذاشته تا اون کتاب اسم کتاب روسی هم شاید کتاب روسی اساطیر و شایع حالا ان شاء الله بعد تون باشه که از من بگید که من مشخصات این یاد کنم اگر گیرت اومد یا دوست داشتین میتونم اون نسخه رو بخرید قوه نسخه فکر بوه. به هر حال این مصره نگر تا حلقه اقوال نامون که نجنبانی مال انوریه و خاجه اینجا تزمین کرده من نمیتونم چیزی تاکی بنابید نه نه ممکنه، ممکنه ان با اقسام اینجور چیزا باشه ولی به هر حال دیگه حلقه اقبال ناممکنه نجمبونه یعنی دنبال چیزایی که چمبر زلفش هم اشاره‌ای داره؟ بله، چمبر زلف رو اشاره میکنه که به دام فقط می‌کنه دانه‌ی چیزی خبری وا مواظب باش که به دام نیفت، قلعه یعنی اون بته انبری رو باعث میشه دیگه. پس اون که داشتن اون چمبر استفاده بله. بله. بله. یعنی همین داشتن چمبری داشتن گذاشتن سرشون بعد طوقی گذاشتن. بله. یه مار کش کهش موجهن مار اغلب، هم مثل چمبر باست نه خیل، من اون خزبینی میگو، بود با انمتن تحصیل شده ی داده تا چاپ کنه. سوائره مثل که قرارداد دادش کتاب طب غاز 400 صفر. مگه اینکه تو قرارداد بوده که 400 صفحه بیشتر نشه؟ بعد این استوری درس اون اورز به اندیکاتور نویس اداره کل نگارش مثلا وزرا اینا که دنبال این کار نبودن این دوره رضا بوده که همه ها و ذقای هر عده هر وزیری متوجه این بوده که خاطر مولکانه ازش راضی باشید حالا خاطر آقای غزبینی ناراضی شد، خیلی مهم نبود. این است که بعد از که گفته آقا چهار سال صفحاتون تموم میکنم و خط مرموز در این خط هم است یا یکی از رفاقه من که مداری که کتابانو مجلس کار میکرد گفته این حواشی رو به همون خط زرین خطی هست آوردن تو مجلس نگردش نفید هست نوشته شده بوده حتی باید نهزن چاپ بود؟ و بوده اونجا سارمی مثلا. نه اونجا اون یاداشته دو ترغنیه اون حافظه و من دارم دو یه نسخه حافظ گرفته بود چاپ کتاب معرفت شیراز و از روی نسخه قدسی نوشته شده اون نسخه گرفته بود داده بود به صحاف لای هر برگیش یه برگ که بعد هرچه راجب اون صفحه محافظ مطلبی داشت این رو این سفیده به خط خودش نوشته پسرش سیروس غنی این کتاب رو به همون صورت چاپ کرد یعنی یه برگ غزله حافظ یه برگ اه... یاد داشته دکتر غنی بعضی صفحهاش هم سفید مونده وصل هم بلی مهم نبوده دید شخصی خودش به همون صورت چاپ کرد و لطر یه نصفه همون داد من, من بعدها آقای سارمی اون یادداشتای دکتر دوستر قنی رو به صورت یک کتاب جداگانه درآورد که اونم من الان دارم. اینا هیچ کلومش مربوط به یاد داشته من قزلینی نیست مثلا همین قطعه انوری رو میبرمد که اینجا فرموده که در حواشی آخر کتاب میارم بله این غزل که من الان میخونم یکی از غزل هایست من از خیلی نوجوانی دوستش داشتم و به خاطر دارم و داشتم ها خیلی بزرگم و یعنی طولانی غزل سیزده بگی وقت را غنیمت دان، انقدر که بتمان حاصل از حیات جان این دامن تادانی کامبخشی گردون عمر در عوض دارد جهد که از دولت داد ایش بستان پند آشغان بشنو و در طرف بازار. که همه نمی ارزد شغل عالم فانی پیش زاهد از رنگی دم مزن که نتوان گفت با طبیب محرم حال درده کنها داغوان چون من زین جا خوزدرم حرام گر به جای من سروی غیر قیل دوست تامس یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی از غمش عجب بی حال پیرکن آخ قوم شکن نمی‌داند اینقدر که سودی را جنس خانگی باشد همچون لعل رم می روید و خون خلق میزد چیز تیز می روید جانم پرسمت درو ما دلز ناوک چشمت گوش داشتن لیکن ابروی کماندارت می به پیشانی جم کند احسانی حافظ پریشان را ای شکنجگی سویت. مجمع پریشانی زاهد پشیمان را ضوغ باده خواهد کشت آقلا مکن کاری کابر از پشیمانی یار تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل حال خود بخواهم گفت پیش آسفستان این آسفستانی ظاهراً بعد چرای کورانشاف باشه و اینم روش و حافظی که یه بار ارز کردم که نه به این کلاس نگفتم حافظ روشش این بوده که قضلش رو می ساخته هم می بعد یک بیت یا دو بیت یا حتی اکثر سه بیت زایی سه بیت در مده اون مندوش می برای اینکه که اگر کسی دلش نخواسته باشه بیت‌های معد‌ها نگه داره، بزنیم، آزه‌الحافظ همون، این قاعده و خیلی به ندرت از این قاعده تخلق شده که بیت معد اومده بالای تخلق ولی معمولاً اینطور ولی اینا همینجور دقیقه دقیقه سانیه،, سانیه ساعت ساعت روز روز به مفت میبازه و هیچی در برابرش نمیگیره تا وقتی عجال شدید یک قصه ای داره مثل این که مولو محسن فیضه در مصنبی تاقدیس یه تراری از اهل دوان دوان اسم شهریس بیده در فارس یک فیلسوف معروفی هم جلال الدین یعنی یکی تررار از اهل دوان رفت تا دکان برقالی روان پس بدان برقال گفت ای حوشمند گردکانت را هزاری گو بچند گفت این هزاری چند دو هزاری مثلا ده تو چند گفت دهتاش شن گفت دهتاش یک قیمت خب یکی شن خب یکی قیمتی نداره گفت پس اگه قیمتی نداره یک یک نوع یک نوع میشه باز دوباره گفت فرمویدیم که یه گردو قیمتی نداره خب ولی گفت بلیدون. گفت یک نوع گردو برد بار سه بام که گفت برقاله گفتش که توماره کجایی گفت باشد میتونم من در توان شهر مولانا جلال نکتدان خب رو ای دوزد ترار دقل دیگری را ده خریب از این عجل داد نفرین بر جلال دین تو خونمود این نکته ها تلخون تو تو میخوای همین جوری به تراری از من یکی یکی مال همون ببری کسی اینجا تمام میشه بعد حتاب میکنه به خواننده میگه ای تو کودن طرز بخال دکان بی بایاتر عمرت از ده گردکان اگر کسی بگه تا این رو بیا اینقدر اینقدر بگیر و بده تو میگه تو هر زمان این رو بله، این ساله، سال مرکز ماه هاست، ماه مرکز روز روزهاست، روز مراکل ساعت هاست، ساعت ها دقیقه ها و ثانیه هاست اینا رو یکی یکی یه یک دونه یک دونه, دونه ازت میگیره با تانو هم تود میشستی قشنگ راهات اینا رو میدی تحبیل بتونید که اصلا نفس دردید میگه حد اقلی که <تصفيق> این کام بخشی گردون حد اقلی که از تو بفاد عمره که در عوضش میخواد کامبخشی گردون عمر در عوض دارد جهد کن که از دولت دادش بستان پس وقتی که حداقل اقل عمر تو رو میگیره این کامو بکنیده پس سعی کن که از این حد اکثر استفاده رو بکنی یه شاعری گفته که روزی هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست میدهد روزی ولی از عمر روزی میبره یه روزو رو می‌گیره یه لخو نون فنیر بهت می‌دهد تو دلت هم خوشه که امروز برکنید کامبخشی گردون عمر در عوض دارد جهت کن که از دولت داد اشت بستانی بیته بعدم در تعیید همین مطلی دید هنده آشقان بشنو و در طرف بازار چین همه نمی ارزد شغل آلم خان گرفتاری های این دنیا تو بالاخره بعضی که همه این کار کردی باید بذاری و بری انقدر ارزش نداره که تو خاطر خواهی تو شکسته بکنی و ملول بکنی و ناراحت بکنی برای شغل این آلم پیش زاهد از رندی دم مزند که نتبان گفت با طبیب نامحرم حال در بکنی ها زاهد که نمتن رندی رو به او نباید فکر زاهد راه به رندی نبرد معذور است عشق کاری که موقوف هدایت باشد بازمال خوی های رند رو خاجه نمونه نمونه اصلیش رو شخص خودش میگه یعنی یه آدم همه جا سر کرده یه، همه سراخو گشته همه مردم و ملل و نحل رو به که تجربه زده یه. از همه اینا سر خورده این میشده رند آلم شد رند آلم را با مسلحه اینی که تار ملک هستان که تبدیل تار ملک داره یا خودش میگه که هر کسی نمیتونه به مرحله رندی برسه پرستد چمر طریقه ی رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست اینه که کلمه رند رو که پیش از حافظ معنی آدم بی سرفا و بلات و لونپن در حق... حقیقت به کار می رفته حافظ معنی تازه بهش اینی که می گه که از رندی پیش زاهد دم نزن برای اینکه که با طبیب نامحرم آدم حال دردتنانی تنانی خود رو نمی ده باغ بان چون من زین جا بذرم حرام اطواب گر به من سر بیج قیل دوست پنشان. اینجا که من اصلا اگه رفتم فقط سر به قامت گوست و بنشان نهید چی دیگر با دعای شبخیزان ای شکردهان مستی یکی از خصوصیات که می گفتن که پیران اصلاح روشنگین سوکیه داشتن این است که گم هممت داشتن و این هممت را اگر به راه سعادت که یا پراه بدبختی کسی می گماشتن این اثر می کرد و, و هم برمکن تا توانی دلی که آه جهان را هم برکنن این همونو می گیر یکی ای شکردهان با دعای شبکیزان سفیزه ما کن بران که خاتم سلیمان اون همه اثری که داشت جن و انس و, و تیر زیر پروانه سلیمان بودن از برکات یک اسم بود که روی این انگشتری چنده شده که اسم اعظم الهی است من راجع به اسم اعظم یه بار حرف زیاد دادم حالا دیگه دنبال نمید در پناه یک اسم است خاتم سلیمان هم اسم اعظم یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی که از غمش عجب دیدم حال پیر کنگ ها به قصه یوسفه که در قرآن کریم می که بعضی اینکه یوسف یعقوب فراغ یوسف مرتلا شد اتاقی ساخنه هم بیت الهزان رفت اونجا و اینقدر گریه کرد و بیز زد عینا ها من و حوکت از این چشماش از قصد سفید شد و او خواسم خسته خود کسی به کسی اپراس خمشکن نمیداند اینقدر که سوپی را جنس خانگی باشد همچون لعل رومانی اول جنس رو برنی پالای ممنوع و اونا که از زوره خاجه هست که حالا هم به هیرونی نوتریا کنه اونا میگن جنس چی دارید جنس عشیش شو. عشی شو. اون وقتا هم میگه خونشکن اینقدر میگه سوپی جیمس خونگی بره شراب جایی داره شراب خانگی ترس محتصر برده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش اون غزل در مدر شاه جا جافز به خلاف طریقه همیشگیش اسمشو اول غزل ورگی سهر زعاته که قیب من بسید به گوش که دور شاه جای می اونجا هم شراب خامگی ترس محتسب کرده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش این جنس خانگی همونه جنس خانگی دارد همچون لعل رومانی رومان یعنی انار لعل رومانی یعنی لعلی به رنگ دوناهای انار می رویی و مجگانت خون میشه. تیز می روی این مجگان رو به خنجر پشت می یه دیگه تیز می روی. تیز می روی جان روی ترسامت فرو مانی چیز تیز به جای سخته بر بخوره فرو می ده می روی به مجگانت خون خلق می زد تیز می روی جان روی ترسامت فرو مانی دل زنا وکه چشمت گوش داشتم لیکن ابرو کماندار از بی برد و پیشان گوش داشتن رو انهم زد کرد. اما ابروی کما، کماندار گفتم یعنی بیرندار ابروی کماندارت میبرد به پیشانی پیشانی کردن پر روی کردن و می کردن و به زیر چیزی رو گرفتن اینا اینجا لطفا کنیم من داره اینجا اینا رو بله مرحومه غزبینی اینجا درمشته و آنچه از بعضی شنیدم که مراد از جنس خانگیه هشیشه است ظاهرن به کلی باهی و پیاساس و جنس خیالات همون معتادین به این گیاه خواهد باشید جنس خانگیر میگه که همون چرب خانگیرم، هم چرب خانگیه خانگی ترس و پردارم خوردارم منوم اینجا چیز کرده اما ما میگه گوش داشتن، به معنی نگاه داشتن و محبوظ داشتن و محافظت کردن برهان و باهار دیگر، فرموده داور دین شاخ شجا آن که کرد روح قدس حلقه امرش به گوش، ای مل کل اش مرادش بده و از خطر چشم بدش دار گوش یعنی محافظه سعدی گوید در قصیده درمت شیراز به ذکر و فکر و عبادت به روح شیخ کبیر و حق روز بهان و حق پنج که گوش دار تو این شهر نیک مردان دار یعنی محافظت به دست ظالم و بدین و تافر و غمان گفتن دونان نخورند و گوش دارند گویند امید بهت خورده جوزی گینی به کام دشمن زر مانده و خالصار مرد. ارز کنم که در مورد پیشانی هم می‌فرماید که پیشانی به معنی شوخی و بی‌شرمی و سخترویی و قبط و صلابت است برهان و باها سعدی گوید نشاید برد سعدی جان از این کار مسافر تشنه و گلاخ مسموم. چو آهن تاب آتش می‌نیارد چو آهن تاب آتش نیارد. چرا باید که پیشانی کند نون یکی جایی که آهند در مقابل آتستاب نمیاره موم نود روش زیاد کنید سلبان گوید غمزه و چشم تو سوخند ولی آمدند ابروان تو به پیشانی از ایشان برسند مولوی گوید رستم من از خوف رجا عشق از کجاست شرم از کجا ای خاک بر شرم و هنگام پیشانیست هر پیشانی کردن و پیشانی بردن یعنی با پر ریدون کن به احسانی حافظ پریشان را ای شکنجگی سوگت مجمع پریشان این یعنی چیزی نداره زاهد پشیمان را زوق باده خواهد کش وقتی که خورد می‌فهمه که ای داد، اون پنجه سال قبل ما زایه کردیم زاهد پشیمان را زوق باده خواهد کرد آقلا، ما کن کارید تا برد پشیمانی روشنه یک چیز تو فارقین از ما، ای نگار سنگین دل حال خود، بخواهم گفتید تیش آسفستان قضل چهار سادش بود каснау. Дерст минерал енергетики нетер. Чарта <laughs> but please. <laughs> but. But. <it> is. <laughs> you so, but. But. But. But. But. But. But. But. But. But. But. But. But. But. But. آره با خدا خیلی از سختن آقای ناصر گل هم خوشحالین هم حسی می‌میر در تن سالام. خوب باشی پدرم خوب باشن به سلامتی برگرد. هرگزی که وقتی گوجی اینجا بود. بابا ما یه پکیج گوجی این نیلان ببینم نیم تلیفونی فقط که سرین کنون خطابه به شخصی که برو گذار کن به کوی و اینجوری بگیم بنابراین معاملی سپاس به کسی نوشته شده و شنه نزول داره اولش به نظر من خطابه یعنی میگه ای ای نسیم صحب سعادت نسیم صحب سعادت بدان نشان که تو دانی نشان اینجا همون نشانیه یعنی آدرس. گذر به توی فلان کن در آن زمان که تودا خیلی مثل اینکه که توجه داره که این مطلب آسکار نشه این دی. این از که میگه که اشاره چند جا اشاره تو پی که خلوت راز دیده بر سر راه به مردمی یعنی از روی انسانیت و بزرگواری نه به فرمان فرمان بردن رو آدم میگه نشد یا نه از روی انسانیت چنان بران که تو دانی یعنی کسی خبر هرچه از ما جران. تو پی که خلوت راه دیده بر سر راهت به مردمی نه به فرمان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 چه را دیر آمدیم؟ یعنی به چه سبب؟ به چه سبب؟ در جواب میگه برای این اینکه بارون میونه یعنی به سبب برای حرف اضافه بس، به اضافه را بنابراین گاهی را مستقلن اصلا معنی برای کار میده جان ضعیف هم زده هستم، خدا را یعنی برای خدا به لعله روح فضایش به بخش از آن به این شینش برمی به خود خواج حافظ یعنی از لعل روح فضا او را حافظ را به از آن که تو دانی یعنی پوسه بگو که جان زعیفم به دستم اینجا جمعه تا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 هردو یه جنسه و اکسید آلیمینیومه رنگش به مناسبت اکسیدهای دیگری که درش هست یاغوت یه, یه قدری پررنگ تره و قیمتش بالاتر لعل یه قدری کم رنگ تره و یه قدری قیمتش هست ولی یکیه در ضمن کلمه لال یعنی سرخ و لاله یعنی گل قرمز رنگ این لاله های سفید و زرد و آلپلنگی رو هنوز هولندی ها اخترا نکردوند که در اون روز گار بدوند اون روز، اون روزهای قدیم لاله هرچی در موزه سرخ بوده و همه دلیگه کفتن لاله یعنی گل سرخ من. لال جواهر نهرو، لال نهر لال لعل یعنی سر و در رابطه هندی محله هست که لال کرتی بهش میگن این خب سوما فکر کنید هندیه هیچ کدونش هندیه؟ لالش لعل. هم هم لال لعله کرتی یعنی هم همون قرطست و یعنی پیراهند لال کرتی یعنی پیراهند صوفا ز رو روحقضا اشاره به لبه که طبیعه چه بگن لال لب؟ چه بگن لب لد. در هر دو صورت تشبیه لب است به لد هردوش یعنی گاهی اضافه مشبه به مشبه هم بهه، گاهی اضافه مشبه هم به هم. ولی مشبه هم چه بگن قد سرب، چه بگن به قد هردوش اضافه قد به به سرب، هیچ وقت اضافه سرب قد به کسی نیست ز رو فضایش ببخش از آن که تود آن هم اینجا زمیر اشاره است صفت اشاره نیست یعنی جای اسم نشسته آن یعنی از اون گوسه من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانه میگه من اینو محرمانه از کردم من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانه تو همزه روی کرامت کرامت یعنی بزرگواری میشه تو همزه روی کرامت چنان بخوان که تو داند. یعنی پیشت مهرمانه بمینی گفتن که یه داستانی داره خاجنزان ملش که حالا داستانش دراز نمیخوام اینجا بگم دست بالش از مال دنیا توهی بود و خدمتش و چند تا مهموریت بهش رجوع میکنن این بحانه میاره برای اینکه دبیر وقتی میخواست بیره تو معمولیتا خالی قالیچهی داشته و چادر خوبی داشته و وسایل مرتبی داشته این نداشته بخاره انواع اصلا بحانه میگیره یه بار دیگه بهش پیشنامات میکنن این دیگه میگه که من فکر کردم که اگر این دفعه نرم دیگه اصلا دوران خدمت اداری من از با نداشتم اصلا خیلی کنگ دود و نارافت. راستاً بیرون شهر روی مسجد خرابه ای بود نشستم دو رکعت حاجت کندم و گفتم خدایا من اجیت که نرم دیگه حاج زامل کی بازین قدم به عرصه وجود نمیگذره و حاجت من روا کن میگه تو این حرفا بودم دیدم که گدای پوری آمد و خدا خود اول اونجا ها رو گشت و بعد کسی تو این هست میگه من فهمیدم که خواسته‌ی زیر نیم پاسته هست چیزی نگفتم و گدا آمد و فورمال دور مسجد گشت و به نظرش آمد کسی نیست و بعد در و بست محکم رو اومد یه جا رو کند و یه پوزه‌ای در رو و توش مفتاری کل طلا بود و یه خوده با اینا بازی کرد و یه خوده شمارد دو چیز کرد و شاید سنتایی همش اضافه کرد نکرد و, و بعد هم رو دوباره درست کرد و چال کرد و رفت میگه ما خب خدا اون داد فاجه نظامش میگه من اینو به عنوان قرض البته از اون که دار ارز کنم که کندم و گوزه رو و رفتم خوری لوازم بخلیدم و رفتم و رفتم به دیگه خاجزان شد بعد میگه که بعد از یه مدتی اون گدای کور رو دیدم جایی که حاجی خوال نشده توی محفلی و ادم دورش بودن اینا و چادری بوده یا تختمونی بوده حال گدایی میگه دیگه گدایی کنه و بعد می‌خواند بنزنش بیرون اینا خاجه اشاره می‌کنی که نه، کاش نهش میاد می‌کنی دو چیز می‌کنه و بعد خاجه میگه که راستی اون کوزهه فاری گداه دست خاجه رو می‌چزده میگه دوست نما فیده می‌گن که چو کار هم بل شد، فلان، این هفته خاجه اشاره می‌کنی کارش یکی از روزی که این کوزه از من دزدیده شد، این کوزه ای طلا من که رجبش با که صرف از این ماجرات دو نفر میشتر خبر نداشتن <تصفيق> یکی من که چی نگفتن قدرت خودداری. <تصفيق> رو یکی اون کسی که برده بنابرای، بعد خواهجی من قرص خورسه رو از ایش می حالا قرصم اینه میگه من این دو حرف نوشتم چنان که قیر ندانه تو هم ضروری کرامت چنان بخوان که تو داند یعنی کسی خبر نشه از... از طرف تو هم کسی خبر نشه خیال تیغ تو با ما حدیث تشنو آب این زیبایی این بیت در اونجاست که تیغ رو شمشیر آبدار و تیز رو خیلی آب تو تشکیلی به خصوص در داستان سمک ایار میگه کاردی کشید چون قطره آب یعنی خیلی چیز بنابراین خیال تیغ و با ما حدیث تشن و آب است این آب یه چیزی هم داره، گوشهی هم داره به اون تیغ میگه ما به شوق تو درست همون حالتی رو داریم که تشنه برای رسیدن به آب داریم خیال پیغتو با ما حدیث تشنه آب است از خیش گرفتی بکش چنان که تو دام امید در کمر زرکشت چگونه نبنده دقیقه ایست نگار را در آن میان که تو دام اولا میان در شعر خواجه و هم سعدی و دیگرون همونی که ما حال میگیم کمر میگیم کمرم درد میکنه اونم گفتن میان و اون که ما بهش میگیم کمر بند اونو بهش کمر نبندی زان میان ترفی کمروار اگر خود را به می در میان تمر کمر آدم با دست مندازه کمر برای اینکه به مثال برسه کمربند هیچ وقت بهره ای از این مثال نمیداره برای اینکه خودش رو در میانه میدید حال میان یعنی کمر امروز و کمر یعنی کمربند بعد میگه که چه تو در کمر زرکش تو کمر یعنی کمربند آراسته و زرکش که نشون میده که باید طرف خطابم مرد جا سنگینی باشه یا کسی باشه و هر حال امید در کمر زرکشت چگونه نبندم حالا باز دقیقه یعنی چیز خیلی ظریف دقیقه توی بیت دیگه خاجه می خوب اینو تفسیر میکنه می که اینجا که نیان او میان او که خدا آفریده است از هیچ حالا این آفریده و هیچ شد این طرف این نصر را توجه بکنید میان او که خدا آفریده است از هیچ شا فریده نکاری هم نیست در کمر زرکاش هم چه اینو نبند دا در آن میان میان یعنی کمر یکی در این ها بود حضیز از زبان که خدا مولانا همزبانی شیفی و فیبندی هست یا آران نامهرمان همزبان ایده صاحب و در این سرکت هر زبانی <laughs> yeah, awak tu penak tadi ya macam که خود این صفت که دیدم به خیلی وقت به هر هر جانیم به که دیدم این هر در خاند دهانم به که چون سویتن آزاده که دونه زوانی است این به و کامت جان از بشتان است از هم ندهن کامم از جان از از سفر جان بگران است قدنگ از سفر جان دیما کلی این از باید آفیده از این همیشه این به آخر و پشتن تو خدم یک که پوکرشان دوزرانی چیزو بودن و اینجا محروم خانده بیل <سؤال> چه نفت کسیتر نایی رو به ماسو قرزیمان در چون دوزرانه دوزرانه رو ما این اون پر مردوی تاک قرشوی توز برم و در اونی دوزرانی با سیدار که شخص اتراده می‌کنم احتمال قبلی هم هسته ساخزه که من چند بار برسن سال از دوران ساهری خاجه در دوره ساخزه و این به یعنی این پختگی تمالی کنسی که اتراده عبدی شهرهایی همزارهی خوبه، برای ما که یک چی نگفت که جز، جز بعد باقی، تاستجا بوده که دوست داشته که زیبایی تو ستایت کنن و باز، قفل که میگه توی از این که این که سره مرده دوست توی گفتن که ویبایی هیچ دنگ ایده پنگ دنگش رو دادودن به یک گفت یک دنگش رو همه مردم این مواله قصد ادالت در شعن نیست اعتقاده اشائر اونا می‌گن که اون سواز خلق و امر عمر هرکای می‌خواست می‌کنه این ور عبد ورد نمی‌کنه به خدا رو تو میزان خود مثلا کفته‌ی عبد این صوره‌ی خواستار نیست حالا گذشته از این به هم خب به که سوال از این زیبایی آمده می‌کنه پغمبر فرمودن که ایلسوف زیباتر از من بود برادرم ایلسوف بیباتر از من بود ولی من ملاحقی در درست از توی یوسفتانی سنی دیدم به حریفت به حضران یادم تو دفتار تا آینه افتار الههی نه میکنی با زیده یه شیرین تر از آن به با شیرین و پستو و نا شکرگیم شیرین تر از, شیرین تر از اینجا شکرپنده. اینجا شکرپنده. ای خود تو تو شیرین نزم. خوست رو خوزانی در در نشاره خوز دو که چیزی هم بوده کرده بعد هم اوزی که تو از اون که من بگم که زمان چیزین همه ی روزه داره آا چرا؟ چرا؟ چرا؟ بله، بله، خوز خسرو اصلا لغب پاتهانیت پاسانیت تمام پاتهانیت پاسانی خسرو، خسرو عربی، خسرو کافی، خسرو خوبار، خسرو انسیدوان، الاخر و خسرو فهلاویش هست اوی خرونگ ها یعنی جارای نام و آغازه میسی دارای صورت و میسی خسرو با و ها چیزی و همیزه سمج می کنم به مواقع خسر و همی که یکی از متاحبای چند روزه یعنی زنش به درستش می کنم چکر اصفحانی که دهتر دوست نظامی داستان چکر رو در خسر سیزی نمی آورد برای اینکه سیزی این که مراتب دیباتر و دلاراتر و همه اینام دوست همی دستش بود فقط می گفت که منو به به رقایت به نظام و خسوز بیر بار نمیرم خیلی دابط موانهی به چه نمیخواست باید خبر میخوام بریم الباکی پیر مرد زن میکنم بریم الباکی میگم گربان خوان به چی ما میدونیم یه خانومی هست در اسفحان به نام شکر شکر اسفحان اقای خسو فربید از موانه دوست میگه خواهی که دسته تا می شکر بناسنا و آقا طالب خانم شکر بود و اونایتگار هم بالاخره فکر بزاری می‌کرده بعد یه شمع خدمت خانوم بوده و صحبم مثل که خیلی از هنرش خودش می‌مازه که تو خود چجوری بیگی؟ شکرم گیه که تو بهتر یکنی سربی بکردی که. تحنت دویه خیلی خوشی چه حالا این رابطه این رویه شب سال بعد دوباره را می آده میاد. بله دوباره میاد آده و به شب رسال و باید چیزی می فرسی. سال است نوم ظاهرا تامدهی که حافظه من باد چیز بعد باید یک از شکن می شکن بالا که من دخترم و مرد رو هم دست نزدید. و من نهمنایی که میان من مست می کنم به طور که این چشم اونجایی رو نمیگینه از, از, از کنیزان رو می کنم این باید به شاه خیلی هم بر بخوره گلان را ده که ده از معدالین راه خود اونجایی ازباهان که تعمه شکره به چشمه ولی به یه سیوسفید بدم. بری به عکل رهز اینکه خانم با طوری میگه بیاریم دفتر دسته که معذردار و ملا بیاریم خانم عرض می کنیم هلوشه بعد هم یکه صحبتی از شکر میگه در شیرین مادرهای عشق سونگرس رو کافه کردیم تو این صحب به وسال خودتان میرشون این راستان زش به این مناسبت آمده که خسروحیرین تقلیدیست از دار داستان سرایی از ویس رامی در ویس و رامی یک زن برادر پوزورد و برادرش ننگ خانواده است اصلا اسباب روزباهی و بدبختی است. تو خاندان سلطنتی ممکنه خون هر دوشون بیخواه چه هزار بدبختی هست و اینا از بس که بدبختی کشیدن و گرفتاری کشیدن و دیس و زدن و رامین و این بران بر در رفته و یه دوستی بهش پیشنهاد بکنی که آره که قد نیست بلند تو برو یه سفری بکن لسه این عشق این اثر بیرون بره آخرین بایه رسوایی تو هم داری میکشی از این میبری خودت داری میکشی از این بری سراپایی هم همه ننگ و بدنامی و بیچارگیه تو برو تو دنیا بلکه روی زیبا هست ساید که فکر بیسه از خاطر دید بر رامین میره و در گورا بعد دختری رو گروه میشه به نام گل که زیبا بوده و خوب بوده و خلا میگن با, با میگه که خانم من ارادتان شما اینا میگه که نه اها شما دلتر که رو بیسته و سعج بیسته که میاری ما رو میس رامین میگه نه نه من چیز میکنم و خلاصه قرار و قول و همه چیز میذارن و ازدواج میکنه این برای این که صودای 20 از سرش بری بیدونه بعد هم نامه برمی داریم می نمی بیست که من اینجا با گل زندگی دارم که هم بهتره فکر زندگی خواهیش می بعد از چندی احساس می که نه گل جای بیست رو در دلش نمی کنه. و می زره می رو می زره می و می داستان ادام پکر این کاملاً طبیبی که عاشقی این صورت با اون عشق بی پرجام پکشنگ نو بکنه که شکل بده زندگی خودش از این سرگردونی آبارگی و بدنامی و قطر رو و اینا راحت بسید شیرینی که سرگران نهش شده از قطر بلند شده اومده در شیرین اونجا مونده سودا تنها صودا عشق قطرو اینو بلش کنه برش کار اسپانی رو این, این قصه به تقلید از قصه گل در داستان و ایترامین شده و بعد خیلی خدا پیام آزده که صورتگر رو اول که این مطلب مطرح شد معنوم به که صورتگرست برای کلاس تخن سنجی سال اول از آنش بیاد که آن که این داستان خوب نیست داستان ستای داستان خوب این نیست و بهتر بود که نظامی نیاره. برهر ها اینا همه همه اینا رو تو این به که از شیرین تر از آن به شکرپنده به گوگم ای خست رو به خوبان تو, تو شیرین زمان تشبیه بد بگیم دهان و تنگ دهانی رو چقدر زیبا آورده تشبیه دهانت نتوان کرد به ککه هرگز نببت قچه بدیم تنگ ده صد بار به که دهم زان دهنت بازسه زمین مبییعنی زان دهن تو را از آن دهن تو را کام می ده. ست بار بگفتی که دهم زاند دهنت کام چون سوسن آزاده چرا که جمعه زبانی حافظ خیلی اشاره در بکنی که ده زبان داره نه چه که زبان بیر کنی؟ بله شد تشبیه ظاهره شده که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد صد بار بگفتی که دهم ده زندهنت کام چون سوطن آزابه چرا جمله زبانی یعنی حرف میزنی و عمل نمی کوی گویی به دهم کامت و جانت به ستانه خیلی پیت زیبایی مثل آب خوردن همه کلمات بینی مثلا مثلا تکرار شده با این حال در نهایت از میگاییم دویی بدهم جامت و, جامت و جانت به سکانم ترسم ندهی کامم و جانم به سکانم تو <تصفح> <تصفح> خدنگ از سفر جان گذر آمد بارها از کردم خدنگ اسم گرخت گرختی که چوبش هم ثبکه و هم سوق الاده برای اینکه تیر اگر سنگین باشه باقامت هوا جلوسو می کنید و اگر ثبک باشه و محکم نباشه به من اینکه خورد و خرد میشه خودش می از حرکت گرفتی می ریزه سکون ستون تاقت اینه که چوب محکم می و ثبک مرخص خدنگ و هم زیر خدنگ هست هم زین خدنگ هست برای اینکه میدونید که زیر زین هم یک چوب بندی داره ما اون شرم ها میگیدید و اون روشند که نگاه میتونید آستری داره که میخصه رو پسکه هست ولی وسطش چیه که نمیدونید وسط یه ما بندی داره که قرار بگیر روی رو پشت و این چوبا چوب خدنگ برای اینکه ثبت باشه و محکم باشه اون زین میگن یعنی زین خدم ولی وقتی که صحبت سفر باشه اونا بگم خدنگ یعنی چیه دیگه چشم تو خدنگ از سفر جان گزر بیمار که دیده است به سخت کمانی سخت کمان هرچی کمان زشت زش بسته میشه و بازوی توانتهایی میخواست که مثال گوش رو کشه این یکی از علایم بود پهلوانی که میاند شهری رفت این کمان منحرک میتونه بیاد بکشید اگر می اگر نمی تونستن های اون شهر بکشن کمان اون رو رو خط که من در پهلوانی از شما سرابند این است که سخت کمان وعنی آدن از گوراور و گورمند و پیرندازی درجه یکی برای اینکه کمانو شدید سخت بیمار وقت چشم معروفه به بیماری دیده چشم محارت خماری که داره چشم رو بای زیباییش کفزی کشم به بیماری کفت در مداوای دو بیمار پرو ماند چشم بیماری که و دل بیماری چشمتو خدنگ از سفرید جان بیمار که است دست به از کمار چون عشق می بی از بیگه مردم آن را که از نظر خیش بران تر راه تو حافظ تو کرد تر آج تو نامش را با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 شاهنامه در شاد مورد، شاد بیشتر در مراسم دعا کسی مومده جلوشاه اینگه به دو گفت شاه ها یعنی انونشه یعنی روان بین بشه یه بیتی گذاشتن نسخه که من اون خانلوی داشته نداره تخلص در جلسه پیش بود بیا. یه غذل دیگه بود که تخلص نداشت و دوستان پرسیدن که آیا این تنها غذل یعنی همین یه غذلی که تخلص نداره گفتم من نمیدونم حالا جوابش هست که نه همون یه غذل نیست غذل های دیگر هم تخلص نداره اونجا یه بیتی درست یا درست کردن یا خود حافظ ساخته و خوش شنگ چی تو؟ میگه داره در راه تو حافظ قلم کرد سرخای سرخای یک دمک از لطف چیز چیزه نیست قلم نسترش را میره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 هوا خواه تو هم جانا و می که می‌دام که هم نادیده می‌بینید و هم ننوشته می‌خوام ملامت او چه دریا میان عاشق و مشهور نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی بیفشان زلف و سوپی را به پادازی و آور که از هر رخه دلقش هزاران ب بیفشان گشاد کار مشتاقان آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس بنشین گره بکشا ملک در سجده آدم زمین بوت تو کرد که در حسن تو چیزی یا بیش از طور انسان چراق افروز چشم ما چراغ افروز چشم ما نسیم زلپ خوبان نباد این جمع را یارت قم از باب خریشان دریق آعیش شبگیری که در خواب سهر بجرد ندانی قدر وقتهای دل مگر وقتی که درمان ملول از همراهان بودن طریق کاربانی نیست به کش منزل به یاد عهد آسان یا لتنبر زلفش فریبت میدهد میدهند حق نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجم با قربان منزلو سفاری من آقا نمیفهمم باز کمام میکنم کتاب شو آسیدا یکی از علایذش اینه که میگه نادیده می‌بینی و ننوشته می‌خوانی و این اشاره به می‌دونم حدیث یا مثلی که ارباب دوغله ملهمون به سازان دولت الهام میشه البته حالا الهام بستن یا سازه و گیره و یا تمیرتون رو سازه بهشون الهام میشه به حال نادیده رو میدیدن منوشت هم میخوندم. هوا خواه تو هم جانا و میدانم که میدان که هم نادیده میبینی و هم منوشته میخوانی این بصف فقط برای ارباب دولت کردن عرباب دوله ملهمون ملامت بود چه دریا بعدم ملامت بود ملامت گو چه در یابت میان آسق و معصول نبیند چشم نابینا خصوص اصرار پنهانی یه عیبه ای عیب جوی از دیگران و از سرزنش کردن دیگران اینه که آدم از عیب خودش خافل و از یه مدت که این عیبه زشت و پیدا کرد باید فکر دونه خودش که عیب نداره این مردم هن که اون یکی دوزه و اینکی سزه و اینکی نمیزم چی رو اینه که میگه چشمش نابیناست اینه آزم از دیدن عیب خودش گفت که سعدی میگه که منرجه میرفت تو خونهش یه نره خرید به هم نشسته داد و فجازش بلند شد به افتزا و سر صدا. ساعت از اینجا گذشت گفت تو برای چه فرق چه دانی چیست که ندانی که در سرایف کی حالا ملامت بو هم همینطوره ملامت او چه در یابت میان عاشق و معشور نبیند چشم نابینا خصوص اصلاع تنانی بی افشان گلف و سوپی را که پادازیز و رقص آور که از هر رخعه دلقش هزاران بود بط بیافشان تو بیافشان که صوفی سر نشاط بیاد و به رقص شروع کنه تو از هر واسله ی هزار تا بط بیافشان بود که لازم نیست حتما یه چیزی باشه بطی دیدم از آج در سومن مرسطت و در جاهلیت منار هزار تا آدم آدم پول زن مقام و هزار چیزی دیگه ممکنه بوت آدم و شیفته و دیوانه بشه آدم میگه صوفی ظاهرا دعوی فریدگی از دنیا و انقطاع از دنیا رو میکنه. برای تو بیارش سر نشاط تا ببینی که از هر پاره درگش چند تا گفت این مخصوصش همون که دل که او به دنیا و مسائل دنیا بیداره روح یعنی وصله یعنی چی که پاره است، و این که اشخاص می نیستن رقعه یه خدمت کنه حرف کردن برای شکست نفسی است. یعنی پار کاغذ بپرستدن خدمت کنه رقعه دلغش یعنی وصله دلغم که خرقه یک بگیم گشاد تار در آن ابروی دلبنداں آوا گوشاد و بند دلبند تو بہ من کہ این گوشاد مَصدرِ یعنی گوشادن نہیں شفت مَصدر مرقم باش نون مَصدری شوخدوی گوشاد یعنی گوشادن گشاد کار مصاوان در آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس دنشین گره برکش یک لحظه آرام بگیر احمتم باز کن بسی این مشتاقان کارشون گوشاده بشین اینکه عرض کردن برای چیزه اینجا اینجا خیلی احراق شاعرانه هست ملک در سجده آدم زمین گوست تو کرد که در حسن تو چیزی یا بیش از پوره انسان البته اینکه خیلی حرف بزن پیغمبر حکم فرمیده است که من نبودم مثلا زمین و آسمان اینا خلقت نمیشون لولاک لما خلق طول و باز حدیث داریم از ایشون که فونت و نبیگن و آدمو ها بین الماء و تیم. من پیغمبر بودم و آدم هنوز یون آب و گل بود یعنی هنوز درست نشده و هر حال اینجا خاجافه زمین زنان که ملک وقتی که آدم رو سجد می کرد مرادش زمین بوسی تو بود زمین بوسی هم از اصطلاحات در نیست کرد